زعف پیامبر در حدیث کسا به چه معناست؟ حضرت انسان دیگه داره انا بشرون مثلو کن من هم مثل شما بشر هستم منطقه من به وحی میشه شما وحی نمیشه ایشون هم بدن داشتن، مریضی داشتن رفاه میخواستن به خلال سختی های کار و رفت آمد ها و اینا گاهی خستهشون میکرد و پناهشون به حضرت بود اما ابی ها بود دیگه حضرت زهر و سامون علی ها مادر پیامبر رو داشت از کوچیکی از پنگ سالگی پیانبر رو ترخوش میکرد ولذا از راه رسیدن گفتن من خسته هستم و عبا رو بیارد ادامه داستان